بسم الله الرحمن الرحيم فصل وليمة العرس وليمة عروسي. أن خيراتك تقسم يكون. أن غزائيك ميدانت. آ وليمة عروسي. أن غزائيك ميدانت. والوليمة على العرس مصحبة. وليمة دا دا بر عروسي. مستحب مستحب که انسان ازدواج کرد یه غذای به دیگران بخوراند و الاجابتو اله ها واجبتون و اجابت دعوت در عروسی واجب است الا من عذر مگر اینکه که شخص عذر داشته باشه حالا یا نتوند نت برود یا اینکه در عروسی چیزایی باشد که نرود پس فصل بعدی در همین انداز است که ولیمه در عروسی جز مستحبات عروسیه و اجابت به اون ولیمه اجابت اون ولیمه واجب است چون حق مسلمان بر مسلمانه مگر اینکه اون شخص عذر داشته باشه از هر طرف که باشد فاصلون احکام القسمی و نشوزی فصل بعدی در رابطه با احکامات تقسیم هست برای اون شخصی که بیش از یک زن دارد الان دوتا دارد یا سه تا زن دارد چون احکام قسم برای کسی پیش میان که بیش از یک زن داشته باشه تقسیم و نشوز و احکامات نشوز. نشوز همون نافرمانی کردان میگند اومد زن نافرمان بود بیچاره مرد اذیت میکرد حالا برعکسش هم هست ما اینجا بحثی رو کارده توضیح میدیم میگه این تقسیم بندیش این نوبت دادنش به زنان تو این فصل توضیح داده میشه میگه و تصویر تو في القسم بین الزوجاتی واجبه تو و برابری در نوبت دهی در تقسیم بین زنان واجب است بله این حق زنانه از حق و ناسه انسان اومد دو زن گرفت باید در نوبت دهی باید مصاوات رایت کن الا یه شب اینجا یه شب اونجا یا دو شب اینجا دو شب اونجا یا سه شب اینجا یا سه شب اون مهم اینه که عدالت و مساوات رو رعایت کنه واجب است ولا يدخلوا الا غير المقسوم لها لغير حاجه موقع نوبتش پیش یکی از زنان بود میگه ولا يدخلوا الا غیر المقسوم لها و وارد نمیشه ها این نسخه ها بردن روس یعنی زمانی که نوبت نوبت یک زن است در روس میگه پیش دیگری نمیره الا غیر المقسوم لها بر اونی که نزد اونی که نوبتش نیست قسم مال اون نیست نمیره نزدش لغیر حاجت بدون نیاز موقعی که نوبت مال این زنه خب شب فرزن مال این زنه تا عصر میگه روز نمیره پوشی اون یکی دیگر اونی که غیر مقصومی لها اونی که سهم سهم اون نیست قسمت قسمت اون نیست نوبت نوبت اون نیست غیر حاجت بدون نیاز مثلا فرزان رفته بازار خریدی داشته ها وسائل رو میاد پیش اون زن دیگر میگذاره مشکلی نیست یون یعنی حاجته ولی اما بدون حاجت نمیره پیش اونی که سهمش نیست، نوبتش نیست. و ایده اراد السفر اقرع بین هن و زنانی که خاص سفر برود قرعه می اندازد بین زنان قرعه کشی میکند. و خارج باللتی تخرج لها القرعه و با اون زنی به می رواد خارج می شود که قرعه بنامش افتاده است. قرعه کشی کرد اگر زنا دوتا بودن یا سه تا یا چهار تا فرق نمیکنه. نام هر کدام که در اومد برنده شد با اون میره مسافرت و ایده تزوجه جدیده هم و زمانی که ازدواج کرد با زنی جدید با زنی دیگر خصها به سبعی لیال انکانت بکرن خاص می کند اون زن جدید رو به هفت شب یعنی هفت شب و همین زن جدید میکنه انکانت بکرن اگر این زن جدید باکره بود قبلا شوهر نداشته بود حالا این نقطه رو میخواد توضیح بده قبلا زن داره زن جدیدی گرفته چند شب پیش این زن جدید بمونه میگه اگر باکره بود هفت شب پیشش می مونه. بعد از هفت شب نوبت ها رو شروع میکنه و به ثلاث انکانت ثیبا اما اگر این زن جدید بیوه بود سه شبش وقت میده یعنی سه شب نزد این زن جدید بیوه میمونه و بعدش تقسیم شروع میشه نوبت شروع میشه و ایذا خاف نشوز المرأتی و و زمانی که ترسید نافرمانی کند زنی و ابتدا اونو نصیحت میکند. فا فان ابت الا النشوس اگر نپذیرفت مگر این نافرمانی رو جمله اینجوری معنی لفظیش اگر نپذیرفت جز نافرمانی را یعنی اگر مستقیم نشد راست نشد به نشوزش ادامه داد حجرها اونو حجر میکنه حجرش میکنه حجر یعنی چی؟ یعنی تو همون یک خونه جدای از هم میخوابند چون این خیلی تأثیر داره برای تعدیب برای اینکه طرف فکراشو بزنه برای به سمت فرمانبردار شدن به سمت رعایت کردن حقوق متقابل این حجر خیلی تأثیر داره پس حجرها یعنی تو یک اتاق تو یک منزل با هم زندگی میکنن منتها رخت خواب آواز میکنند فا اقامت علیه اگر باز هم بر اون نافرمانیش قرار داشت نافرمانی را رها نکرد حجرها و ضاربها هم حجرش میکنه هم اونو زند. البته این زدن به خاطر این که امروزا شبهات زیادی تو جامعه پیش میاد زدن به اون معنا نیست که بره یک تازیانه برداره به گونه ای طرف رو بزنه که فلج بشه یا آثار چوب رو بدنش ببوند شما ببینید یه چوبی رو شما هرچقدر آهسته هم بزنید اون طرفینو زدن حساب میکنه حالا یا بحث بحث ترس هست یا فلسفه های دیگه درش هست اما اومده که زدن زدنی نباشد که نه تنها شکستنی در پیداشته باشد بلکه اثری روی پوست باقی نماند دیگه خود تصور کنید که این زدن به چه شکل باشد البته بعضی ها که خب این زدن رو از محققین معاصر به معانی دیگه هم حمل می جهت تحقیق بیشتر میتونید مراجع کنید و یا از قطب نشوزی قسموها و نفقتوها اون مسئله که بیان میکنه میگه ساقط میشه با نافرمانی کردن نوبت زن و نفقه زن زنی که نافرمانی میکنه بیچاره مردو اصلا حقوق رعایت نمیکنه به فرمان نیست زندگی را به کام مرد تلخ کرده نافرمانی میکنه ساقط میشه نوبتش و نفقش دیگه نفقه بر مرد واجب نیست خودش میده بزرگواریه. ولی الله شرعی دیگه برش واجب نیست چون این زنو گرفته که باش زندگی کنه و زن الان دیگه زندگی رو به هم زده با کارایی که میکنه فصل الخلع فصل بعدی در رابطه با خوله هست و جایز جائزون علا ای وضن جایز است جائز بر ای معلوم خوله اینه که زن مردشو میگه من تو زندگی منو عقد رو فسخ کنیم یعنی از طرف زن این خواسته در مقابل من یه چیز معلومی به شما میدم ها؟ یک میلیون بهت میدم دو میلیون میدم یک فلان چیزو بهت میدم خلاصه میگه خول جایزه یعنی فسخ عقد از طرف زن بر ایوازی معلومه و تملک به المراه نفسها با این خلع زن مالک خودش میشه یعنی آزاد میشه دیگه مال شوهر نیست بهتر تعبیر قشنگتری بگم دیگه زن شوهر نیست و کلمه مالو و کار ببرن بعضی فکر میکنند که این دیگه همون بردگیست نه بحث از اون زاویه هست بحث سرپرسی و شوهر بودن اونا پس میگه با خال زن مالک خودش میشه یعنی نه معنی عقد فسخ میشه دیگه کاری با مرد مرد دیگه کاری نیست معنی اینه و رجعت له علیه و رجوی هم برای مرد نیست برای اون زن الا به نکاح جدید مگر این که با هم دیگه عقد ببندند پس مرد نمی تاند به این زن رجوع کند بدون عقد بدون نکاح جدید ولا رجعت له و رجوی برای شوهر نیست علیها بر اون زن زن که خلق کرده الا به نکاح جدید مگر با نکاح جدید و یجوز الخلع في الطهر و فی الحیزی جائز است خلق زمانی که زن در پاکیست و همچنین این زمانی که زن در عادت ماهیانه هست در دوران حیز هست در دوران قائدگی و قاعدگی است در این دوران هم خلع جائزه ولا یلحق الطلاق و ملحق نمیشه به زنی که خلع کرده طلاق بله که با همین خلع همه کار تمام میشه فصل الطلاق فصل بعدی در رابطه با طلاق هست الطلاق دربانی طلاق بردونوی صریح و کنایه طلاقی که صریح هست و تراقی که با الفاظ کنایه هست صریح نیست فالصريح صريح قدومه همون الفاظی رو میگند که به معنای طلاق هستند معانی دیگه‌ای ازش برداشت کرد فالصریح ثلاثه الفاظين صريح سلف داره میگه الطلاق والفراق والصرح طلاق فراق صرح هر استا به کمالی هست چه باش بگه كيف سرحتك تلقتك ببقش من الزمير موانسه هربا هر يكي ازين ستا اللفز زنو طلاق داد انا الفاظ السريحة سا وطلاق بدون النية واقع مش ولا يفتقرو سريحو الطلاق الى نية طلاق زمن كي با الفاظ السريح باشي نياز بالنيات نادر دیگه بهش نمیگیم که آقا تو گفتی زن تو تلاقی نیت طلاق بوده یا نه اصلا نیازی نیست که نیت رو توضیح بده یا یعنی. نه تلاق واقع میشه پس تلاقی که با الفاظ سریح باشه نیازه به نیت نداره ول کنایتو نوع دوم دو کنایه هست یعنی الفاظی که غیر از طلاق معانی دیگه رو میشه ازشون برداشت کرد موالا دیگه که شوهر به زنش بگه در عربی آورده الحقی حقی با اهلتک با اهلت ملح والله از ده اهلت آ این میتونه های مختلفی داشته باشه پس این کنایه است میگه کل لفظ این احتمال الطلاق و غیره کنایه هر لفظی گفته میشه که میشه برداشت طلاقو ازش کرد و میشه برداشته دیگه ازش داشت معنی دیگه جز طلاق رو برداشت کرد. و یفتقی رو الان نیه این نیاز به نیت داره اگر گفته باشه الحقی به با اهلک به اهلک برو به اهلت به پیوان برو نزد اهلت حالا کنایه ها در ادبیات های مختلف در زبان‌های مختلف متفاوتن اگر بشی با کنایه گفته بود اینجا دیگه نیاز به نیت داره اگر نیتش طلاق باشه طلاق واقع میشه اگر نواشه طلاق واقع نمیشه